ما در مقام بیان صفات امام بودیم که امام چه صفاتی باید داشته باشه اجمالا ارز کردیم قبلا مطالب شاید زیاد باشه ولی خاتمه اشتیم می بدیم این بحث رو و کردیم که کار امام چیست کار امام اولا رهبری و زعامت حوزه اسلام است. یکی از کاراشه که این حکومت رو باید اداره, اداره کند قوامین رو اجرا کند متخلفین رو جذا بدهد امرو معروف کند نهی از منکر کند و خلاصه عقل را اجرا کند یکی از کارهای دیگری از کارهای امام این است که رهبری از نظر معنوی و صفات و کمال انسانی بکند زیرا که امام نه فقط بیان کننده راه است عمل کننده به راه نه نبیان میکنه که راه خوب اینه و راه بد اینه از اینور بریم از اینور نریم نه فقط ایست این که میکنه ولیکن این ایمان به معنای ازمی شد رهبر و کسی که مردم موظفن به دنبال او برند یعنی گفتارشون کردارشون اعتقادشون اخلاقشون روششون باید مطابق او باشه پس او باید فردی باشد واجد تمام کمالات دین و واجد تمام کمالات انسانیت که بتونه رهبر باشه این هم مطلب دوم مطلب سوم هم که امام وزیفشه مبین احکام بیان کننده آیات مجمل بیان کننده احکامی که رسول الله صلی الله علیه آله بیان نفرموده بیان کننده محکمات و متشابهات ناسخات و منسوخات ابطال کننده برداشتهای غلط از آیات و روایات هر فرقه و هر جمعیت و هفتاد دو ملت پیدا شدند هر از یه طرف میکشه و هر کسی برای خودش روش و طریقهی درست کرده از هر کدومشون بپرسیم یا آیه براد میکنه یا روایت براد میکنه بلا ماشاءالله یکی از کارهای اساسی امام رهبری مردم از نظر دینی یعنی احکام بلون نشده را بیان کند و مجملات قرآن رو تف اختلافاتی که از برداشتهای غلط در دین پیدا شده است و هر کسی هر ای رو هر روایتی را رو به بلدخواه خود و به میل خود معنا میکنه و توجیه میکنه یه نفر میخوان که برای ما مبین واقعی مراد آیه و مبین واقعی مراد روایت و خلاصه لدگین کتاب و سنت باشد و رافع این اختلافات باشه شما که شاید بهتر از من واردید همین نمیدونم کرغه کذایی منافقی هم آیه برات مخونم هم آیه مخونم برات هر جوری دلش به خود این رو میگردینم حالا نه این هر جوری دلش بخواد آیا رو معنا میکنه یه نفر مرجع ما نمیخوایم که به او کنیم و ببینیم این معنایی که این میکنه درسته یا نه و وقت من خودم عقلم میرسه یه چیزی ولی گاهی اتفاق میفته قصد هم فرض علماء سنی ها بعضیشون خیلی ملا بودن شاید جوری مطلب و که چی جوریه؟ چی بکنه؟ پس بنابراین این سه تا مطلب حالا فعلا که یکی دعامت امور مسلمین، یکی رهبری عملی برای جامعه مسلمان ها و هر کسی که طالب رفتن به سوی کمال است و که یکی هم بیان احکام این سه مطلب مطلب است که ما از امام مطلوب ماست بنابراین تمام استفاتی را که در قرآن برای رهبری و زعامت کرده باید در او باشه تمام صفاتی را که امام و پیغمبر باید دارا باشه در ای هم باید باشه چون مبین احکام او و بیان کننده احکام بیان نشده و رافع اختلافات. بنابراین مراجعه به این جهت آیاتی رو ارز کردیم و عرض کردیم به اینکه در قرآن کی باید زعامت امور مسلمین رو بکنه اولاً باید مؤمن باشه و ثانیاً باید عادل باشه و ثالثاً باید مصرف نباشه و رابعاً باید ظالم نباشه و باید جبار عمید نباشه و باید چه باشه چه باشه اینا را از آیات براتون آیاتش رو خوندی آیاتش رو خوندیم دیگه هم کی باید رهبری کند و من باید به دنبال کی برم معلومه که دنبال کی باید برم دنبال اون کسی باید برم که واجد تمام کمالاتی را که دین دنبال او آمده و برای او آمده واجد تمام این کمالات باشه معلوم باید دنبال ای رفت وعرض کردیم از آیات شریفه و از غیر آیات شریفه این مطلب در میاد اعلن خلق باید باشد افمن یهدی الالحقه حقون یتبه اما لا یهدی اللهم یهدا، باید اهل صبر باشد باید اهل یقین باشد و جعلنا هم یهدون به امرنا لما صبرو و کانو به نام موقنون یا موقنون حالا علا کل حال علا کل حال اهل صبر باشد اهل یقین باشد و همچنین تمام کمالاتی را که انسان دنبال اون میخواد داره و دین برای اون کمال انسانیت آمده این ایمانی که پیروی از او باید بکنم و دنبال او باید برم، باید واجد اون کمالات باشه لقد استفیناه آیه شریفه چی بود امین الله استفاق علیکم وزادهو بستتن في العلم اون خدای تعالی ارز می شود جالوت را ظاهران انتخاب کرد برای زعانت شما و برای سرپرستی این حوزه شما و او را به عنوان ملک و آقا برای شما قرار داد اون وقت صورت ارز می شود این که وزادهو, بس وزادهو بستتن فل علم و الجسم که تو رواید به همین آیه شریف استدلال شده که امام باید اشجع خلق باشد و امام باید اعلم خلق باشد این میزان استفاست استفاق و علیکون خدای تعالی آخه گفتن انا یکونو له الملک و علینا و نحن حقوه من ولم یوتست من المال اینکه پول نداره چطور شد این رئیس باشه راه راه دو... قال ان الله علم کن و زادهو بستتن فی العلم والجسم والله یعطیمون که من و پس همین کمالاتی را که دین برای رسیدن مردم به اون کمال آمده این باید واجب باشه تا رهبر من باشه تا بتوانه مرا عملا بکشه به جانب کمال و آیاتی که در این بابت بود عرض کرد و چون پیغمبر مبین احکام لازم داره چون مدت پیغمبر خاتمه پیدا کرده است و این دین تا ابد باقیه و قهرن احکامی مورد حاجت است که بیان نشده است و قهران سطح فکرها و سطح معلومات رو به افزایش و کسی میخواد در هر زمان جوابگوی اشکالات و راهنمای برای طریق فهمها و درکهای مختلف که بتوانه بفهم حقایق رو و بتوانه به اهلش حالی کنه این مطلب رو همچه کسی لازم داری از که نمیسیم شب یکی از اهل می گفت. می این میگفت میگفتش که یکی از قبل زمان تا قد یه استادی ما تو دانشگاه آمد درست دار استاد فیزیک بود یا استادش ریاضیات بود خلاصه با یه معادله جبری ثابت کردی خدا دروه خب این یه کسی باید بلد باشه جوابی این رو بده و الا خود جات مردم تمام نیست مردم در زلالت خواهند و فا. پس بنابراین یه نفر حد مطلب ما لازم داریم برای بیان احکام و برای بیان مطالبی که رسول و غالی و غالی بیان نفرموده بیان مجملات قرآن و بیان مطلب بنابراین اگه ما دین راجع به بیان است و تکمیلش احتیاج به امام داره همون شرایطی که در نبی باید باشه در امامان باید باشه پیغمبر چرا باید معصوم باشه زیرا که اگر پیغمبر قبلا البته بحثشو کردیم اگر به معصوم نباشه مردم را به زلالت بکشد از روی گناه اون که قراز نبوت حاصل نمیشه مردم را به ظلالت بکشد از روی خطا و اشتباه که مردم را به راهی ببره بعد از شش ماه دیگه بیاد بگه بنده اشتباه کردم اینجوری بود غذیبه پس باید یه فردی باشد نبی که مأمون از خطا و از گناه هر دو باشد زیرا کسی که اهل گناه هست گفتارش پذیرفته نیست و بهقول خودمون گفتارش مکذب کردارشه میگه دروغ نگیم خودش دروغ میگه میگه دزدی نکنیم خودش دزدی کنه این پذیرفته نیست گفتارش در بین مردم این مطلوب که عبارت از هدایت مردم به سمت کمال باشه به وسیله چنین کسی حاصل نمیشه پس باید اهل گناه نباشه و باید اهل صحب و اشتباه و خطا نباشه زیرا اعتماد مردم از بین میره اگر بگوید من اشتباه کردم صحب کردم خطا کردم هرچی که بگه خوبی اعتماده اونکیشم صحب باشه هرچی بگه اعتماده اونکیشم اشتباه باشه پس بنابراین اون مطلوب ما حاصل نمیشه یعنی غرض از ست اندیا حاصل نمیشه همین تقریب و عین همین مطلوبی که در باب انبیاء هست امان در باب ایمام هست امام باید از خطا و گناه محفوظ باشه تا قولش پذیرفته باشه و گفتارش مورد قبول باشه و هدایت و راهنماییش به درد مردم بخوره و این مطلب که پیغا امام باید معصوم باشه برخلاف مذهب آمنه که آمنه میگن نه لازم نیست معصوم باشه نه فقط لازم نیست معصوم باشه ممکن است گناهکار باشه عادل هم لازم نی باشه گناهکار باشه و همه اقسام گناه ممکنه بکنه اگه نداره سمی هنچری ولذا برای اونا فرق نمی کنه متوکل عباسی و منصور دوانقی و امثال زالک اینها هم داخل در خلیفه رسول الله هند و اطاعتشون واجب آیا صحیح هست این مطلب آیا صحیح هست که بگیم خدای تعالی در قرآن فرموده قطی الله و اتی از رسول و اول الامر منکم ایتاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول و اطاعت کنید از اول الامر آیا معقول است که خدای امر کند ما را و واجب کند بر ما اطاعت کردن از اول الامری که گناهکار است اطاعت کردن از اول الامری که ممکن است امر به گناه کند میشه این؟ معقول هست این مطلب؟ یعنی در حقیقت خدا تعالی میگه هرچی دستور دادم همش بی اطاعت کنید از اول الام اگه اول گفت نماز نخونید نمیخواد بخونید اگه اول الامرتون گفت روزه نگیرین نمیخواد بگیرین اگه اول الامرتون گفت مال مردم بخورید بخورید اگر به گناهی امر کرد انجام بدید پس معنیش که هر چی من امر کردم همه بی خود و در حقیقت اطاعت از اولو امر گناهکار یعنی بلقای تمام احکام ساقت کردن تمام احکام و معقولی این مطلب که خدای تعالی امر کند به اطاعت کسی که معمون از گناه نیست زیرا که ممکن است امر به گناه کند یا اشتباه کند و امر به گناه کند یا نه معصیتاً و ظلماً امر به گناه کند و خدای تعالی ما را امر کرده که اطاعت کنید دستورات ای رو نیشه این در حقیقت به قول نه به اجتماع نقیزه اینه یعنی معناشین است که سلو والا تو سلو. نماز بخونید اما نمیخواد بخونید زیرا نماز بخونید یا یا لزین آمنو اقه نماز نخونید اگه همتون گفت نماز نخونید نماز نخونید از کردم نمیدونم من یادم نیستش که یکی از این حکومت های کذایی بود نمیدنم مراکش بود نمیدنم چی, چی بود تونست بود چی بود نباشت در بیز در سال پیش با کم زیادش یه معرمزونی مجلسشون یا نمیدنم چایشون کشون دستور بگه بود که چون بزر اقتصادی ما خوب نیست کارگران خود روزه بگیرن چون زرف پیدا میکنن کار کنن مسلمش چیه؟ ما نیشون که من شاهدم این کنه شهر فلی از سموه خدا در قرآن میبرمد هر کسی که ماهرم روزه برخور کرد واجب است که روزه بگیرد نه نه به بگیرد پس هم روزه بگیرد روزه نگیره امر کنیت ناقضه این میکن و معقول نیست خدای تعالی اطاعت اول الامری را واجب کند. که این قول خودش اهل معصیت و اهل گناه و امر به گناه یا اشتباهن و یا عمدن داشته باشد پس بر این واجب است در مذهب شیعه که امام باید معصوم باشد یعنی اطاعت مطلق در حق کسی واجب است که معصوم از گناه و اشتباه و اطاعت کردنی کسی که در معرض گناهه این امر کردنه به ترک واجبات و محرمات و در حقیقت معناش الغا کردن واجبات و محرمات الغا کردن احکام این, این آیه شریفه در مناسبت این آیه شریفه امیر المؤمنین سلام الهی در حدیثی فرمود این الله تبارک و تعالی امرا به اطاعت و اطاعت رسول و اطاعت اول الامر خدا تعالی امر به اطاعت اول الامر کرده و انما امر به اطاعت اول الامر لانهم مصلحون مبحرون لا یا امرون به زیرا که اولو را متحرند و معصومند و امر به معصیت نمی مردم رو به طاعت امر می خدای تعالی میگه از اینها اطاعت کنید یه بنده خدایی از خوشام حوشان ابن حکم میپرسه که از کجا ما باید امام را بشناسیم؟ خصوص میگوید امام باید اعلم خلق و از خلق یعنی سخیترین فرد خلق و اشجاع خلق و اعصم از ذنوب باشد از ذنوب معصوم باشد هم از صغیره و هم هم کبیره فی کل زمانه قائمین به حاضر استفه الانتقوم تقوم الساعه هر زمان یه فردی که اعلم خلق و اشجای خلق و اعصم خلق و از این به اینکه از اصخای خلق هست باید باشه و این صفت امان آمسته و نفهمیده زیر رو, رو بکنه و حکم رو تغییر بده فیقت من با علیه الحد و یهود من یجب علیه القطع بر جایی که باید دست بریده بشه حد بزنه در جایی که باید حد بزنه دست ببره و خلاصه اون چرا که وظیفه هست عمل نکنم یه بود که یه حدیث ارز کردم که چهار نفر پنج نفر بودن اومدم پیش عمر ظاهرا و همشون زنا کرده بودن عمر گفت برو همشون حد بزنی امیر المانین سلام و علیه در این مجلس حاضر بود و فرمود این حکمش این نیست حکمش این نیست از کرد چیه حکمش یا اول حسن فرمون اینو باید بکشید اونو باید سنگسارش کنید اونو باید ست تازیانش بزنید اونو باید پنجات رو بزنید یکیرم عرف کنید این تعبیر مندی این چیه تو در وقتی یه همه یک عمل انجام دادن چطور شد جرمشون یکی است ولی کیفره مختلفه فرمود اما اون میکی رو باید کشت او کافر زنی و از شرایط زمین با زنای با مسلمان از شرایط زمین خارج شده او رو باید کشت اون یکی رو که گفتم سنصارش کنیم چون عیال داشته و محسن بوده و کسی که محسن است حدش رجم است صدونی رو که گفتم 100 تا تازیانه بزنید جوانی بوده که زن نداشته و صد تا تازیانه حدش شه اون که گفتم 50 تا تازیانه بزنید عبدی بوده که زن کرده و عبد کیفرش نیست حره و اونو که گفتم آزادش کنیم او دیوانه است دیوانه حد نداره باید آزاد بشه لذا خوشانم همین رو میگه باید اعلم ناس و احکام باشد زیرا اگر اعلم نباشد بر جایی که وظیفه کشتن است او نمیکشه بر جایی که وظیفه کشتن نیست میکشه و خلاصه نمیفهمد چه بکنه پس باید اعلم خلق باشه اشام میگوید با که لم یعلم ان ینقلب شرائعه وتصدیق ظالک اگه دلیل میخوا برا مطلب من یهدی الى الحق حق ان یتبع ام لا یهددی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون خدا تو قرآآن کسی که به حق هدایت میکند و شما را ب راه راست دلالت میکند از اون پیروی باید کرد یا کسی که خود راه را نمیداند ما لکم کیف تحکمون چگونه حکم میکنید خب پس بنابراین دلیل بعد میپرسه از کجا گفتی باید معصوم باشد فرمید لم یکن معصوما لم من انیت خلفی مایت خلفی و غیره، اگه این امام و سرپرست حوضه اسلام معصوم نباشه، گناهی که دیگران ممکنه بکنن اینم ممکنه بکنه پس یه نفر میخوان در این حد اجرا کنه یه نفر میخوان جلو خود این رو بگیره آخه این امام رو برای اقامه عدل میخواستین برای جنوبیری از گناه میخواستیم برای اجراع حدود میخواستیم خود این اگه معصوم نباشه در معرض این گناه ها پس یه نفر باید باشه که برای این حد اجرا کنه و امروی بر این اگر معصوم نباشه فیحتاج الی من یقین الحد علیه و انه لای مؤمن عرض میشد. ان یک تو جارهی و حبیبه همسایش که بیاد بیادی گناهی بکنه یجوری جوری ماسمالیش به تعبیر من میکنه رفیقش بیاد مطلب رو خلط مبحث میکنه دوستش بیاد یه جوری مطلب و خاتمش میده به حال اون که این برای اقامه عدل است برای جلوگیری از ظلم است و اتخار و تصدیق و اینی جائل کل الناس اماما قال من زرریتی قال الله ی و عهد ابراهیم رو منصب امامت به او دادیم ارز کرد خدایا در زرری من هم این منصب رو باقی بدار خدای تعالی خطاب فرمید که این منصب به کسی که ظالم باشد نمی رسد داره استدلال میکنه و این آیه شریفه رو از می شاید و بزرگان به مناسبت این مرمون آخون که کفایه مشتق و امثال زالک به این آیه استدلال کرده و تو روایات هم به این آیه استدلال کرده ارز می ائمه هم فرمودن که کسی که در یک ساعت از عمرش مشرک باشد و بط پرستیده باشد صلاحیت برای منصب امامت ندارد و به این آیه شریفه تمسک شده لا ینا الاهب الظالمین ظلم در قرآن منحصر نیست انسان به حقوق کسی تعدی کنه نکیشه مال کسی رو برای تو سر کسی بزنه این یکی از مصادیق ظلمه ظلم در قرآن دایره وسیعه نه شرک و نه بالاترین ظلم ها شرک است و من یتعدی حدود الله فاولاکه ظالمین هر کسی که از حدود خدا تجاوز کند اینها ظالم هستند شاید و من یتعدی حدود الله فقد ظلم نفسه به خودش ظلم کرده پس هم ظلم نسبت به خدای تعالی صحیحه هم ظلم نسبت به مردم صحیحه هم نسبت به خود انسان صحیح انسان به خودش ظلم بکنه همه اینا تو قرآن اطلاق ظلم برش شده است حالا لاینال اهد الظالمین میگه این منصبی که من قرار دادم ای به ظالم نمیرسه کسی که مشرک بوده کسی که کافر بوده کسی که فاسق بوده کسی که گناه کرده ولو یک زمان هم که گناه کند دیگه صلاحیت برای این مقام نداره البته این جهتش که ولو در یک زمان گناه کنه بعدنم آدم خوبی بشه صلاحیت نداره این دیگه میره تو بحث طلبگیش که چطور بالا در یک زمان گناه کند دیگه تا آخر صلاحیت نداره برای اینکه این, این منصب رو دارا باشه بزرگان دوتا تا کردن بنده اجمالاً عرض میکنم دیگه تفصیلش مال های دیگه یکی گفتن خدا عالم و مدلای نال و عهد ظالمی عهد من یعنی این منصب امامت که عهد خداییست به ظالم نمیرسه خب این آقایی که یه روزی فاسق بود این آقایی وقتی که فاسق بود این آیا شاملش میشد یا نمیشود اون وقتی که فاسق بود شاملش میشد و آیه چی میگفت میگفت ای فاسق اهد من به تو نخواهد رسی اطلاقش به قول طلابی یعنی این عهد من به تو نخواهد رسید ولو تو بعدا جزو آدم خوبا بشی و جزو آدلا بشید نگفته تا وقتی که فاسقی این به تو نمیرسه. گفته به فاسق کسی که فاسق باشد این اهد من نخواهد رسید ولو بعدنم عادل بشید بس به قول طلبه ها اطلاق این دعای شریفه ولو بعدا هم برگردد و بشه جز آدم خوبا لیاقت این من رو نداره دلوزه بزرگان شیعه هم در باره پیغمبر و هم در باره میگن قبل از نبوتشون باید معصوم باشه اگه پیغمبر اول مدت خوبصو مشروب میکرده و از روانی گمار به دوزی میکرده حالا بگه بنده امروز پیغمبر شدم از امروز آدم خوبی شدم عبادن اهد گوش نمیکن به عرفیمش او تو کارم نزاست که میگن پیغمبر باید از اول دارای منصب اسمت پاشه زیاد تا حرفش مورد پذیرش مردم بشه لذا که اون چنین و آله در داده ایمان این طور آیه شریف هم, هم میگه میگه لا یا نال و اهبد بالم اینگه مطلب بود حتی اگه دیگری که حالا بگم دیگه این کلمه را ازمی شاید بینیم که بلا من فرمیدن بینیم که ما چه چو جو آدم میتونیم تصور کنیم یک نفری میتوانیم تصور کنیم که هم قبل از امامتاش و هم در زمان امامتش مسون از گناه بشیه یه جور این فرض. هم قبلا و هم بعدن مسون از گناه این فرض. فرصی بابان این است که هم قبلا و هم در زمان امامتش گناهکار بشیه اون هم فرض. فرصی بابان این است که قبلا آدم بدی بوده گناهکار بوده ولی زمان امامتش آدم خاری شده اونه فرض سه بود فرض چهاران عکس قبلا آدم خوبی بوده ولی در زمان امامات شده بدی شده از این چهار فرض خارج نیست ابراهیم علیه السلام که برای فرزندانش تقاضایی من صبر کرد برای کنی که از این تا کرده احتمال این که اون کسی که قبل از امامتش و در زمان امامتش آدم فاسق و گنهکاری بوده ابراهیم برای اون خواست این احتمالش که خدای از این اولاد من اونه که فاسقن هم قبل فاسق بودن هم زمان منصبشون فاسقان خدای اون, اون رو امام دید احتمالش ده. و همچنین برای کسانی که قبلا آدم خوبی بودن در زمان تصدیشون فاسق شدن برای اونا تغازه این منصب عظیم رو برای اونها کرده که حالا توضیحش بعدن میان که این منصبیست که بعد از اینکه بوده ابراهیم خدا امامت رو بهش داده بعد از اینکه که پیغمبر بوده امامت رو بهش داده حالا این منصب عظیم امامت رو که بعد از نبوت به ابراهیم دادن برای فاسق میخواد اینم احتمالش نیست پس این دوتا بره کنار دو دیگه واقع میمونه یکی اینکه قبلا فاسق بوده بعدا آدم خوبی شده یکی نه از اول تا به آخر آدم خوبی بوده میگه خدایا یا برای من این منصب رو قرار بده ولی که فاسقن نمیدم آه. به که فاسقا یعنی اینای که قبلا هم فاسق بودن بعدن هم آدم خوبی شدن این منصب به نخواهد رسید پس منصب منحصر میشه به اونی که قبل آدم خوبی بوده بعدن هم تا آخر آدم خوبیه این است که معصوم است و لایق برای این منصب به هر حال. پس اسمت از جمله شرایط اساسی این مذهب شیعه است و دعوی اساسی بین شیعه و سونی همز سر همینه که اگر از آیه شریفه قرآن و آیه شریفه قرآن این دو آیه فیلن هست ولی آیات دیگه هم شاید بشه استرلال کرد این دو آیه یکی اطاعت اول العمر مطلقا و خبای تعالی گنهکار را متاع قرار نمیده که از گفتارش اطاعت کنید و دیگر لاینال و عهد ظالمین است که این عهد و پیمان من به ظالمین نخواهد خیلی خوب این مطلب تا اینجا تمام و به نظرم دیگه مطلب رو خاتنه میدیم صفات ایمان رو تمامش کردیم تو ببینیم هفته آینده اگر زنده موندیم چی شروع کنیم ان شاء الله یه مطلب دیگه یعنی چیز مباحث دیگه رو انجام می‌دیم اللهم صل علیه